هر گلبل حکایت با صبا کرد که اشک روی گل با ما چها کرد از آن رنگ رخم خون در دل افتا. و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد غلام آن نازنینم که کار خیر بی روی ریا کرد من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هرچه کردن آشنا کرد گر از سلطان طمع کردم خطا بود ور از دلبر وفا جوستم جفا کرد گر از سلطان طمع کردم خطا بود ور از دلبر وفا جوستم جفا کرد خوشا شواد آن که درد شب نشینان را دوا کرد نقاو گل کشید و ظلف سنبول گره بند قباوی قنچه کرد به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد سبا کرد بشارت بر بکوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد وفا از خاجگان شهر با من کمال دولت و دین بلوفا کرد